یا تمسک و بگید برای عدم و حجیت خبر با که امام می اونی رو که می از ماست اون ما تعلمون ما علنتون این رو قبول بکنید و ما در فر فردوه از این اما اگر علم ندارین رد به ما بکنید و تصرف درشتن. که از این حدیث مبارک چه معلوم میشه که اعتبار در اسناد این روایات خصوصا در این سوال اینه که امام خاطیط عبدالله علی ظاهرن سوال میکنن به اینکه علم منقولن آبای که به اینها مختلف کار بکنن البته یه تعبیر اختلاف کرده مثلا ظاهرا چون اختلاف اون معنا که مراد مثلا ترجیح باشه نه نظر، ظاهرا اصل حجیت نظر باشه که سابقا هم عرض کردم عرض شد که این روایت در دو کتاب آمده یکی در کتاب مرحوم صفار بسایر و, و درجات از محمد بن عیسی بن عوبید نقل کرده که ایشون خود شب علی حسن ثالث از نهادیو دیده تسلیم شده به اسم امام و تعجب که از اون داوود بن خرقد فارسی میگه من نوشتم به امام اینطوری آمده همین این, این سوال و جواب در یک کتاب دیگر هم هست سلام علیکم و که این هم برای ما تعجب آور واقعا چطور شد این عین این سوال و جواب آمده واضح نیست برای ما بر این در کتاب بسا در کتاب سرائر مرحوم ابن نویز رحمه الله به مناسبت اون آخر کتاب که نوازه یا زیادات از مسابق است لیکن بعد به مستطرفات نه جمله یه منذاره که مستطرفنا من کتاب مسائل رجال قلعه اول حسن السالس و عجر وقا عنوان کتاب رو این داده نوشته روایت ابن عیاش مرحوم احمد ابن عیاش احمد محمد که کتاب معروفی از او نام کفایت اثر اصرف نصر مثل اسمه هشتر هست و مسائل و کتاب برقایت عبدالله ابن جعفر الحمیری این طور اسم کتاب رو برده اسم دو نفر رو که ابن عیاش ابن عیاش از علمای معروف بغداد بود و مرحوم نجوشیمی کان صدی و ولی والدی و سمیعت من حشی الکفی الا انی از تو اصحاب نایی را اکونه و یک مزونه هره یکی از این دو و فتجنب تو روایت هم ظاهرن الا به واسطه هستن بینی به نظر اینجا چون یکی دو جدیه داره بردش داره واسطه ورزش بردش نداره ولذا بنابرا مشهور به خاطر این کلام مرهومه نجاشی تضعیف کردم همچین تضعیف نیست این آن تضعیف بود معنا نیست یعنی اشتر ناظر روینه که میراس که مقداری تخریب شده میراس است که قابل قبول هست و نیست بله الا بواست این به هر حال این کتاب الان در کتاب مرحوم ابن ادریس به این عنوان هست مسائل و رجال لعب حسن سادس و عجبت ها روایت ابن عیاش و عبدالله ابن جعفر الهنگری. اون وقت در اسنا، به این مثلا مسائل و داود سرمی مثلا مسائل و محمد در اینطوری تعبیر این حالا واقع مطلب اینکه اون کتاب چیه کتابی که در اختیار مرحوم ابن عزیز بوده ما در میان اصحاب مشهور خودمون شخصی بنامه احمد ابن اصحاب عشقری قومی از اشائر قوم میشنسیم که فوق العاده جاید قدر یکی از کسایی که این قصه شب عید و زهران نقر میکنن این احمد ابن که جایش رو بیشون مشغوله مسئلیشون در این تأیید کرده امشب چند رو به خاطر اون رو نمید الان یه احمد ابن اصحاق فوق العاده جدور قدره فوق العاده از بزرگان اشائر قوم و فوق العاده بزرگوار. ایشان مرحوم نجاشی می به این که و کتاب مسائل و رجال الله و حسن سالس و عجبتها بعد از اون میگه جمعه این کلمه جمعه به این معناست که مرحوم احمد بن اسحاق خودش سوال نکرده کسانی که استفتاء کردن از حضرت هادی اینها رویشون جمع کرده این اوصافی رو که نجاشی راجع به اون کتاب میگه بس هم دارم نجاشی همین سندی که در اینجا هست میاره،, میاره این اوصافی رو که مروم نگاشی راجع به کتاب احمد بن اصال اسمش هم نیست کتاب این اوصافی که میگه به او بیشتر میخوره حضرت خود عبدالله جعفر همیاری هم کتابی داره روی مسائل و رجال ان اول هزار سال است حالا آیا این کتاب دو دوتاست یکی شماعه عبدالله نجعفره احتمال که احمد نیسهاق از عبدالله جعفر گرفته باشه این جمله از او خیلی خیلی دعیلشون رسفتاً احمد نیسهاق برش مقدمه عبدالله نجعفر نسر با او کچیتره و خیلی راجعه با احترام قائله و این همونه بایدی که خوندیم از عمری و موسیقتان همونجا داره که عبدالله الله با احمد بن اسحاق بودیم و احمد بن اسحاق اینطور گفت واضح که مرحوم همیانی نسبت به احمد بن اسحاق اظهار خضوع و خشوع دارد این که احتمالا کتاب مال احمد بن اسحاق باشه خیلی قویه اسمش هم تو کتاب نیامزه ندیدیم کسی هم گفته باشه و اگر اینطور باشه یکی از مصادر اصحاب ماست که به ما نرسیده بود تا حالا توسط ابن ادریس رحمه الله ایشون نام برده و منشه آشنایی ما با این کتاب شد به هر حال این ظاهرش این طوره این کتاب حالا اگر مال هنگری هم باشه یا مال هر دو باشه ایشون جمع کرده ما بین هر دو مال احمد نسحال باشه به این که مسائل رو دست کرده مثلا مسائل داود سرگی مسائل رو فلا اینطوری مسائل مسائل یکیش نوشته مسائل محمد ابن علی ابن ایسا اینطوری نوشته که اینجا آمده ایشون در نوشته سرایر نقلا من کتاب مسائل رجال بقیه اسم کتاب نایورده سنده نایورده بعدن مسائل و محمد ابن علی ابن عیسی ما به همین قر Yang مسائل مسائل احتمال کتاب احمد بن اصحاق باشه مسائل و محمد ابن علی ابن عیسی حدست محمد ابن احمد ابن محمد بن زیاد و موسبن محمد ابن علی ابن عیسی قال کتب که لفشق موسر کانون الله و عیده خیلی عبارت ابهام داره پلق داره روشن نیست شیخ موسیل کازمی مسائل رجال هم نه اول حسن سالسه نه اول حسن اول که حسن موسیل کاش موسیل الله و او خیلی عجیب قلیه البته تبر قواعدی که ما میتونیم این عبارت غلطه که تفتایی را شیخ یعنی الابر حسن سالس دیگه امچه الابر حسن سالس هم پیل من نمیدام کلمه شیخ چرا به کار برده شده در روایات ما سالت و شیخ مراد مثلا جهتره اما اینجا چرا شیخ به کار برده به هر حال فعلا انسجام عبارتی نداره یعنی عبارت سوشن نیست قلط نزده اما من معتقدم که اینجور عبارت که ظاهر خیلی قلطه به همون صورت خودش نگاهه داریم شاید بعد یا بیا نقطه دیدی برش اشتغال کنه و یه چیز دیگه هم من دیدم کتاب توای اشیخ مصدق جعفر اگر تو این هم این هم که این در ساده دربیه همین تازگی هم در شبش که یه باب دیگه‌ای هم هست ربطی طبیعی این باب نداره کتاب که اشیخ مصدق جعفر دربیه نداره خودش به هر حال خیلی عبارت ابهام داره یعنی این شناسایی این مطلب خیلی کار سختی اینه بارد تقییه نبوده خیلی بعیده نه اصلا رفتی موسم جفر مسائل رجا اله حتی موسم جفر دارم چه رفتی داره میم از... کله دستکاری نباید تو کرد همجور نگرش تو بعد اگر میشنه شاید یک برش پیدا پس نگرا شیخ مصطفی جعفر یه جدیام داره کتاب بده به مصطفی جعفر حالا این چی شده ما درست نمی‌دونیم به هر حال این کتاب چون به هر حال یک کتاب مشهوری نبوده مسائل محمد بن عیسی ان عبدالحسن الصالح اون کتاب قدبی روایت قدبی مسائل محمد بن عیسی الیختیمی ان عبدالحسن الصالح اگر یاد آقا این باشه من چند بار عرض کردم که مکتب اول و دوم بغداد مکتب خوب مهم که کارشون تنقیح و تصیح و ارزیابی و مراجعه و مقایسه روایات عمی متقدر ما هست موسیقی باقی روساد و طولی به من اینکه تازه ترسیز کرده باشن در مکتب بغداد اول هست مختلف فرساناش تو مکتب خوب هم هست این لبای جزه به اسطلاح ما یعنی این تا روایت چه به سند بسایر و درجات مال مکتب اول بغداده محمد ابن ایسا و سوال جدیدیه یعنی رفتی در وقت سابقی نظر و این لبایت دوم هم مال قومه محمد ابن ایسا خدمت امام و حادی نامه نوشته اصلا با ارمان این ای سوال و جواب بوده در همین کتاب سرائه شد هنشید سوالش آمده یکی هفت سوالش راست چند تا سوالشی فیلانس کتاب مسائل محمد از این دو تا رواید هر دو جزوه تولید حساب میشن یعنی نبوده قبلا یکی در قوم یکی در بغداد. وغدادیش مال بسار و درجاته قومیش مال همین کتاب به هفته در حیله نوشته الو پیش بوده در این منم الان بر ما ابهام داره یه ابهام دیگری که داره خیلی این شیخ مصری کاظم ای عز الله و عیا دوں مرحوم نجاشی کتاب محمد بن علی بن عیسیہ مسائل ایشون رو نسبت الى ابو محمد اصفهانی بعد محمد نسبت امام اصفهانی اما اونی که الان در این کتاب وارد شده اله اول حسن سالسه امام هادی این هم نمیدونم هم بر ما هموز داره چون این کتاب مسلم واضحه که مسائل و رجال اله اول حسن سالسه نه اله محمد اما مرحوم نجاشی که اسم برده نماشته لهو کتاب مسائل ام محمد الاسکری این یک را مشکل دیگر توی این روایت که البته احتمالاً شونایوشی اشتباه کرده احتمال میدیم به هر حال در اینجا چه در جمع احمد احمد ابن اسحاق اگر مال احمد ابن اسحاق بود اگر مال, مال همینی باشه, باشه به اسم عبدالحسن صادزه و خود من نجوشی هم تو احمد بن ایسحاق نجوشه مسائل رجاله و عقل حسن سالس اونجا این تو نجوشه ولی اضافه ذهن که اون الا محمد روشن نباشه این همه نکته نکته نکت نکت تا اطراف موضوع روشن بشه ده ده. از همین موارد همین به و این همینه خوب فرضا الله عین نه یه باب دیگه هست مال ایشون نیست مال شخص دیگه‌ایه میشه از شیخ مصدق جرد این عبارت بده مالی ایشون این این همینه این مسائل رجال همینه اون یه تکیه دیگه چه یه دیگه هم داره اگر آمینادشون باشه ما همین پر روز تو بحث مقاسب در تعریف ناصر روایتی بود که ناصر اون کسیست که اولی و دعون مقدم بکنه اونم همینه سنده شد همین کتابه همینه همینه اونم همینه که یکی از از امام ماهادی سوال کردند که ناصل یکی برای اینکه تقدیم جب تو تا بود یا نه اون یکری. این هم همین بحث مکاس رو که آنجاشون باشه هر تو بحث اصول شهر هم مسئله رو تو بحث اصول میکنن. این همینه این چند تاره باید داره که کتاب طررائق 80 دا باید با هم میزنن. دیگه همه که شما خوون یکیش مثل نصر یکیش همینه که الان داریم میخونیم. و از اینکه اینا در این کتاب آمده پس یک مشکل که باز الان نمیدونیم این تو تویله یاد اینکه این کتب تو شیخ موسر کازه امام عسکری که شیخ من بودن از امام عسکری اماموشون 29 سال در وقت شهادتشون. ازشون اماموهاده که اماموشون 27 دنیل شد 2-4-3 ساله بودن که رس مروده شیخ مرد بگن خب نمیدونه شیخ موسی کازن چیه نه یک سند دیگری خیلی از این سند این تحبیری داره از موسف نجرف که قرمودی همینه این همینه این با این هم. خب تا اینجا روشن شد که این کتاب احتمالا این که اینجا داره حد محمد ابن احمد قائل این حدسان عبدالله ابن جعفر حمیری باشه که الان اسمه در کتاب را راموزه احتمال داره را احمد ابن باشه که ما ارز کردیم احتمال داره مرحوم احمد ابن اصحاق یه حدسان اما خب احتمال وزارش همینیست که مرحوم حمیری باشه این یکی و منش از هم ارز میکنم مثال یه دیگری که روشن شد معروفه این کتاب مسائل توی مسادر اصحاب ما توی فهارس اصحاب آمده لیکن مرحوم نجاشی از او با عنوان مسائل لاعبی محمد زه چی هسته اونی که الان ما داریم زهارم مسائل لاعب الحسن سالز این هم روشن نیست برای ما دیگری که از مرحوم نجاشی ایشون رو محمد نعبی این قومی آورده به این عنوان محمد علیه ابن عیسای علی قومی و توضیح زیادی نداده که کان برچ هم به قوم و ها این جزارم براد از وجه وجه اجتماعی باشی چون وجه هم نسبی سیه. یعنی از وجوه قوم در مسائل اجتماعی یعنی یک شخصیت اجتماعی تو قوم بود و بعدم چون یه امیره محلی شخصیتش به خاطر این که حال که امیر بود از طرف از کلم قومی قوم به لازم تقسیمات سیاسی تابع ری بود اگر امیر بود این تابع ری حساب نشد لیکن مرموم شیف در رجال اسم ایشون هم محمد بن محمد علی ابن ایسای اشعری عبرده اگر این درست باشه معلوم میشه که ایشان فرز اشعری قوم بوده و کرارا ارز شواهد معیده چون اشاعر قوم اینا یمنی بودن اشاعر از کوفه آمدن لکن قوم به صورت حالت چوپانی داشت اصلا کومه بشنیم گفتن خیمه خیمه بود شهر نم اشاعر اینجا رو بهتا اون عرب ها در مقابل فارس ها و ایرانی ها اصلا فرض کنیم برقی اینا رو عرب حساب نمی کنن. اما ایشون رو چرا؟ با بابا خودشون رو ایرانی یا ارجم حساب میکرد همه همه رو عرب ها حساب میکرد توی نشه هاشون هست مرهومه اشاعره چون قمر رو شهر قرار دادن حکومت را هم به دست گرفتن یکیشم خود احمد احمد, احمد اشعری که اسمش زیاد میرویشم والی بود یکیشم پدر ایشان زار این تیره به خاطر تحصیل ترسیس شهریت قوم ولایت و حکومت و امارت قوم هم در اختیار داشته البته مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرستش قیل از این محمد ابن علی ابن ایسا، محمد ابن علی ابن ایسای تلهی هم ذکر میکنه من میگه اون کتاب و از طریق ابن بطه میگه نجاشی این عنوان نه هم آی و عده ای گفتن زاین دو یکی یکی تلہی و قومی و شیخ تکرار کرد ظواهر امر این طوره که چون در کتاب المسائل نوشته شده شیخ امر همین طوره که ایشون میفرمن من احتمال میدم مرحوم شیخ در دو در دو مصدر مختلفی که از واحه فهرست این ولید یک از فهرست دو در دو فهرست مختلف دو تا ازم دیده احتوان در دو نفر باشن خود ما هم الان از مصال بکنه احتوان دو نفر باشن چون ایشان تلحی بودنش هم خیلی از یه بیان کتاب بطه غلط بوده قومی بوده تلحی نبوده چون ایشون هیچ نسبتی با تلحی معروف ندار رسوش تلحی بوده. اگر تو اجدادشه کسی تلحی بوده اون سن باید تلحی بوده الله. توی اجداد ایشون هم تو اونجایی که ما الان میشناسیم تلهی میشناسیم مگر اشتباه شده باشه. حال یک مقدارم راجب به خود ایشان و این که دو تانی یکی صحبتی هست و انصافا این احتمال هست دو سوره چون الان برای ما هم خیلی روشن نیست که این تلهی همون اشعری باشه اگه اون باشه یا قومی باشه مگر که بازه مت غلط باشه تلهی غلط باشه قومی مراد باشه. این هم راجع به این قسمت کار راجع به شخصیتی ایشون هم روشن شد محمد پسر علی پسر ایسا پس ایشون پسر اموی مرهوم احمد عشقیست چون احمد بن محمد بن عیسی، و احتمالا ولی علم و ایشون اول چون در اون کتاب ابنه و احمد اشعری از این احول میکنه شاید ایشون وادی و امیر خوب بوده بعدم احمد به احمون ایشان ولی در ایشون نصبش واضح هرگه اشعری باشه محمد بن علی بن ایسا بن عبدالله بن سر نمیده جلو نصب ایشون در نجاشی هست نه این شخص نه ایسا به و همه میشه که ایشان که اموی احمد عشقی است خلاصه بحث خیلی رو نکنیم البته شخصیت احمد عشقی نداره اون که ما از ایشون شخصیت اجتماعی را امیر بودنه احمد عشقی دو بزرگانه فقه ها و روات و محدثین و حدیث شناس و شخصیت جهیل علمی است ایشون نه ظاهرم فقط همین جنبه اجتماعی و کان امیران بخون و چند بخون همین مقدار بوده خب تو یک مقداری وضع ایشان هم روشن شد محمد ابن علی ابن عیسای اگر همینطور باشه که شیخ در رجال رو چون نجاشی قومی گفته دعید هم نیست همینطور باشه خب کاملا تا این نقدار روشن شد ایشون قایتا هم دورهای سر اموش حاله که هم جروتر عربتر احتمالا جروتر باشت و احتمالاً بعد از فوت ایشان امارت قمرد مثلا حالا امارت یا کان ال سلطان مرحوم نجوشی راجع به احمد میشه کان ال سلطان با سلطان مقابله میشه و کان امیران داده میراجی به احمد برشته ظاهرش محمد بن عیسیا پدرشان هم همین اون این محمد بن علی نیسا است اون احمد بن محمد نیسا است حالا یه حاله روشن شد که ایشون از شخصیت های سیاسی قوم بوده بلکه امیر قوم بوده و به احتمال بسیار قوی چون ارز کنیم اشاعر عبائل شاید شیعه به من مستلح نبوده و اهل بید اعتقاد داشتن امادن شیعه مستلح ظاهرا این ها دیدیو دو شیعه مستلح همین محمد نهلی نام بزدهادی نوشته سوالاتی رو کرده سوالات رو مطرح کرده ظاهرا ایشون باشه این هم راجع به مطلب دیگه لکه فقط ما مشکلمون با کتاب نجاشی ایشون شد مسائل لعبی محمد با این که مسائل لعب الحسن سالسه نمدر لعبی محمد این هم یک نکته. نکته دیگری که در کتاب نجاشی هست ایشون که تریبه چه میکنه به کتاب همی مسائلی ایشون از طریق عبدالله ابن جعفر همیریه از طریق همیری نرمی کنم بقیه سند عین همیست که اینجاست همین سنده که اینجا آمده یعنی در اونجا داره حد نسنا محمد بن احمد ابن محمد ابن زیاد الان این رو نمیشنسیم اما احتمالاً جز از ها باشه فعلا اسمش احتمال داره خیلی واضح نسفره این الان نمیشنسیم در اینجا داره و موسابن محمد نهلی نیسا این موسا پسر محمد نهلی لیکن در کتاب نجاشی جای و موسا داره ان محمد نهلی نیسا احتمالا نسخه مرحوم نجاشی مرحوم سرائه خیلی مشبه بوده این باید به جای کلمه يه. الان موجودش و موسا بین. اون چیزی که الان در همین سند در کتاب نجاشی هست به جای موسا و موسا بنامده ام محمد نعری نیسا اینجور آمده ظاهرش هم همین درسته اما بازم میگن من دستکاری فیلم توی سند نکنی چونی خیلی سند مشردهیه پیدا کردن نسخه صحیحش رسیار مشکله وقتی این معلوم میشه اینطور بوده حالا اگه کتاب احمد نسحق باشه یا کتاب همیری باشه مثلا اینجور بوده مسائل و محمد نه علی ابن حد دست محمد و نه احمد این که اسمش برده نمیشنسیم ایشون رو ان محمد نه علی ابن ایسا قال تو ال شیخ موسرکازه این ال شیخ موسرکازه نمیشن نمیشنسیم حالا ال شیخ یک واسطه ای بوده که نامره برسته حادی یا به تربیر نداشی بر از خیره سنده یحتمال نمیشنسیم این قسمت و کار هم الان مبهمه در هر حال زواهرش زواهر ارز میکنن معید این مطلبه که این مقدار از کتاب مسائل و محمد نهلی ابن, ابن ایسا هست این خلاصه بره هست مسائل و محمد نهلی ابن, ابن ایسا ظاهرن انعبد حسن سالس و علا کلام نجاشی انعبد محمد ظاهرا این هر واجبی البته راجبه توزیری ایشان مرحوم نجاشی توزیری نکرده این شخص سیاسی بوده محترم بوده وجیر بوده اما اهل علم و تز و علما و نبوده مثل اون پسر عموی خودش احمد ارشدی یا برادر او عبدالله عبدالله هم از نظر علمی برایشون خیلی مقدم خب تا اینجا تقریبا روشن شد ابهام های کتاب مرحوم ابن ادریس هم تا حدی روشن شد البته هنوز ابهام داره اما تا زیادی یا کتاب احمد ابن سارق و اشعری یا کتاب مرحوم عبدالله ابن جعفر حمیدی ممکنم است این مسائل رو این شخص نهار کنه محمد ابن احمد ابن محمد ابن زیاد الان ایش رو نمیشنسی وکه چون دو طرف یکی شخصیت اجتماعی است شخصیت علمی است دو طرف شخصیت بزرگی است احتمالاً احتمالا ایشون هم چهره سرشناسی بوده یا احتمالا مثلا چیزی حال از راسته محمد زیاد در اصطلاح ما بیشتر به نبی عمر میخوره ممکنیشون نبیه نبی عمر باشه یه تمام الان چیزی رو بگیم اما اجمالا احساس میکنیشون باید آنواین داشته باشه شون طریق نجاشی هم همینه نجاشی هم یه نهر و, و از این آقا محمد احمد ان مرحوم محمد بن علی نیسای این تا اینجا میمونه بحث دیگر اینکه آیا ایشون توصیق دارن توصیق نداره ایشون و اجتماعی و وجه سیاسی بودن اگر که موزر به نباشه نباشه خیلی توصیق نیست اما ناجور چیزی حاجی جمعیشان شا نغ نکرده شیخ همونطور کانه و جهنبه البته ادعی گفتن کانه و هم خودش توصیره ما توضیحه اعط کردیم وجه چون دیگه امر نسبیه امر مطلق نیست لجن اجتماعیه وجهن سیاسیه وجهن عشایریه وجهن مادیه پولداری بوده پولداری بود چون این چه امر نسبیه اون وجهی توصیله که بچه علمی باشه اگر وجه بچه علمی باشه از وجوه علماء باشه وجوه من میشه قبولش کرد اما از وجوه توجا، چرا چیده به صابت مصطلح داده و چون داره کانه وجه هم بگم و امیران علیها این قرینه ایه امیران علیها به نظر من این طوری به نظر خود من واضحه که ایشون بچه سیاسیه شخصیت سیاسی زرگم امیر رو من. رئیس ما بوده و حالا نگه کسی میگه رئیس هرچین گفت قبول میکنم الا توصیح مصطلقی که درد آلم و طلبگی ما بخوره آخوندی ما بخوره خیلی وجود نداره برای ایشون و هر حال راجب محمد ابن علی ابن عیسی این مقدار اجمالاً میتونیم و ساقتی هم برای ما رو اوشنید این مطلب دیگه راجب و ساقتی ایشان لفتیم مثلاً فرض کنیم دیگه مثلاً بزر اش مورد احترام بوده مثل اینها آزتا دروغ نمیگن مشهورن برای خودشون انواعی دارن اینم این راجه برای توصیل ایشان اگه قبول مسئله دیگه بعد از تمامی مقدمات حالا غیر از اون نقشیم که باز اول درست کردیم که عبارت ایشون با اون روایتی که از داود اون فرقد فارسی اصلا بیشون نمیخوره ایجربتی نداره محمد ایسان نوبل یکتیمی این همه سوال و جواب این همه خیلی عجیبه خیلی واقع تجربه آور این همه. هم هم سوال هم جواب نمی دونیم شده حالا این حالا اینم نکته که اول بحث از که ما خود مطلب کردیم ما نه سال عن ال منقول ال اینا عن که بچه که سلام الله علیه و آله و سلم فعل اینا فی چیز اول و دیگر اختلاف ال رد و انکار ال ماستر ال رد الی شی مخصوصه چیکار می‌کنه؟ تکه درباره اسلام ما علم تمنه قول و فرزمو و مالا تعلمو فردوها و دو الینا کرد به این که خبر واحد و جمیع باید پیدا با ما علم پیدا بکنه. فشا تو باید علمتون بعد این پیدا کردن خبر كلام اونهاس که مبانی و حجیت و زن ماتور نمیتونیم ما علم تو من نمون قولو نا بادر من من هی روز بود فرس و هی روز بود هی بوده صحبتی عرف کردن ببینید یه هم الان به غربی و چیدی بنام هرمونتیک و سرست داره که دارن یه خب ما سالا قرآن گفتیم شبیه این رو هم مرحوم مقدس مرحومه محقق کمی داره البته اوشون میگه زواهد کلام من قصد افهام و حجر ما چون کلمات امان سهل بید مثل قضایی های موردیه باید اون موردش حساب کرد باید اون مخاطبش حساب کرد یاتون باشه مثلا ما از همین رواست امران نحنزله میفهمیم نحوه خطاب امام به نشون میده که امران نحنزله مرد ملگاییه مرد فاضلی منتفضه یعنی امام وقتی به اون جواب میدن خیلی موشکافی میکنن مسائل رو دقت میکنن مثل این مسئله شناخت مخاطب خیلی مهمه. ما تا این جا مخاطب که شناختیم یک شخصیت است. احتمال داره مثلا اه. مطلبی به امام نوشته تا مثلا طبقی نوشته خودش به در مسائل علمی ورود فیلا بکنید در حقیقت امام فهمده تو در مسائل علمی وارد نشد کارتونیست یه وارد ما علم بنده و قولون ها به این شخص میخواد بگن تو در فضای علمی وارد نشد مثلا تو اونچه که میدانی که بس مال ماست اینو خیلی قبول کن اون که میدانی به ما مراجعه کن این مال این مخاطب خاصه نه اینکه کلام امام پس اون باید فقیر باشه باید مللا باشه یعنی این مخاطب خاص شما هم میشه بزید مثلا میگنم ما بینیم علما مختلفن مثلا بگیم این قبول بکن قبول مین نه ه که خیلی خیلي شبهه اونی که اتفاقیس قبول بکن اونجا که مثل اختلافدا میتوني احتیاط بکن این در حقیقت شما میخای در حقیقت جواب ندیم در حقیقت میخوایم این طرف بگیم که تو این کارا خیلی دخالت نکنه حالا این آغا خیال کرده مثلا احمد اشعریف سرمویشان فقیح بزرگواری حدیث شناسه بررسی میکنه ایشون هم شاید دلش این کارا بکن اما هم فهمده نا آوازن تو این کار رو رکن معالمی تو ماله و قبلنها این چی مال ما هست قبول دقیه کن تو دخالت خود به قسم میکنی خود دخالت تو این قضایی ها نکن گذار این حدیث مبارد اگه اصلا رب تو موضوعی در اصول آقایی بخواهم بگم به نظر ما نداره این بیشتر نازر به حال شخصی من میخواستم به این که در, در مسائله این وارد نشو ما علمتون اگر فهمیدی انتظار کردیم قول ما هست خیلی خواهد. به ما رد بکن. دیگه خود بحث علمی و ترجیح اتفاق و این حدیث اون حدیث بهتر است و این چنین است و این قبول بکنیم اونو قبول نکنیم. نصف شناسی چون کارش نیست. از کن سیاسی در حقیقت بخواستن امام روشنی به نظر ما که اینو میفهمیم هست حدیث. با در نظر گرفتونه اون حدیث ناصب رو ه آیا ناصبه؟ شاید مراد ما این باشه که بله چون قوم مرکز تشگیه بود دیگه با یه اون زمان تمام بخواه بنام برده اگه در قوم کسی اول دومی رو خریده در قوم ناصبه نه اینکه ناصبه خود نکنیده توی قوم که مرکز تشگیه همین که کسی اون دو نفر رو استقال خلافت براشون بزونه خود این ناصبیه خب دقیق می کنید مراد اینکه این که این نوشه کتب توید بخصا هیچون سیاسی هم بوده اما میخواستم بگن تو خیلی توی این قضای وارد نشو کسی در محیط قوم بیاد دیگه اولی دومی خلیفه خود این ناصریه در محیط قوم ناصریه نمطلقه دیگر احادث رو اینجور معنا بکنیم خیلی یه حل میشه. پس بنابراین روشن شد تا اینجا این, این دو تا حالی سرانه کمی توضیح دادن یعنی ها تولیدات مدرسه بغداد و غمه مثل مکتب اول بغداد چون مکتب دوم بغداد دیگه تولید کلن نداره جزبه تولیدات در مکتب اول بغداد و غمه و متاسفانه چون کتاب خیلی مشهوری نبوده اوهام های فراوانی داره همین ای که معارسیده اون نسخه بساره درجات ابهام نداره اوهام شما اینکه ایگاه بوده میفرق نمیشنسید و یکی بگه اینکه سوال رو جا بشه. در این در یک سوال قم آمده ولی نقطه دیگه نداره اما این یکی قم خیلی ابهام داره که کتاب همیری ایست کتاب احمد اصحابه حالا همیری هم باشه اون شخص رو الان نمیشناسیم یعنی محمد احمد که در وسط آمده خود این که این آقا این نامه ها رو به حضرت حادی یا از ترس کردیم توی این خیلی در خود ج اون رو هم نمیشناسیم چون ظاهر کتاب حضرت هادی ظاهر عباعت مرمومه نجاشی حق زرزگریه من فکر می‌کنم نجاشی اشتباه کرده باشه همین درسته که عبدالحسن حالی مخصن اسم کتاب قرار داده شده مسائل رو به جال عبدالحسن سالس احتمال قریب میدم همین باشه ایشون اشتباه کردن مرموم نجاشی بطرسال لاحصه دن الان که ماکان، با این توضیحاتی رو که ما ارز کردیم انشاءالله الله تعالی واضح شد که این حدیث مبارک موظفن به ابهام هایی که درش وجود داره و میشه بعد الوتیا و الاتی جواب از دون فرغادم همینطوره شما دو تا شخصی میخواستون اصل علم واضح میشه ما زندن تو وارد نشد. اون چیزی که دونیم مال ماس قبول بقیه هم از ما سوال بکن خودت وارد بحث علمی نشد. بعد این این غیر از عمر ابن هنزلت که با امام محجب میکنه امام میفرمد به این مشکول دو هر دو مشکولن پنش روی نهار کدن امام میفرمد که موافره در آم یکیش موافقه با بعضی آم یکیش موا... مخالب با بعضی آم بعدا میگه آمدش ما چی حساب میکنه رأی حکام و حکومت حساب میکنه یا روایاتو شد با... این مرد ملات میگه این آدم مرد ملاتیه این مرد, ملات مرد ف حساب کتاب دستشه اینجا جای ما میخواد دو نفر آورگه اگر دوتا باشه مفتی داوود نفرقد فارسی و یکی محمد نری ابن عیسا. تمام به این دو بزرگوار میخواد بفرمایند که شما در این ها دخالت نکنین ما اون چه بیذید قوله ماذ قبول کنیم بقیه رو که براتون ابهام داره به خود ما ارجاع بدید مثلا ببینید در روایت امام داره بعد چند بار مناقشه مشهور و هر دو مشهور و مؤبرات امن و مخارمزه امنه و این کتاب روایاتشون و حکا آخرش که نه اینا با هر دو می‌سازه اون ما چی می‌گیم یه ادن تلقای تا قایمومت سر بکنه یعنی کی من طوریش حساب را نرسره امام در این اول چندین توقف این توقف نیست این در واقع که بعد از این اینا دو تا هر دو اینجوری از خبر شما امام می‌خواد هم دیگه من چیز چیزی یک نقطه موردی داره این قابل حمد کلی نیست ایلن فرجه حتی سلقه ها این باید موردی تو ساره باید بیری که با تمام این باشه و اگر کلام من تا آرز من مثلا جواب شدن اما به طور کلی تو به ذوابط کلی هم تا جواب بدن اینه این موردیه در اینجا امام به جای اون موردی رو همه اول به کار بوده اینه معنیم تو از نو قولونا به جا اون دومی که علم فرجه حتی فرقا امامه حاله به مالم تعلقه اون فردوه لینا این به زمانه علم و عدم روشن شد اونجا سه چهار بار اخذارت که تا آخرش ما دست نگرده از این اینجا از اول ماه فر میدانید مشروع مسلم یعنی نیست این کلام ماست اهلا اگر معلوم نیست کلام ماست ارجه حتی, حتی ردوه لینا این هم راجعه به این قسمتی که پس انصاب قسمتی اینی که تمثل که بیدیم برایت این که روایات احلی بهت حجیت ندارد مگر اون که علم داشته باشی روشن نیست مضافا بیدیم که همون اشتالی که همیشه عرض کردیم مراد از علم داریم برایت اونو علم و اورفیس وضوع و وصول و اون علم استراحی نیست و ماها مقیده اون هم نیستیش بیره باید نداره ما باید ایک از اصوح رو اطمیناد داشت باشیم که این این الفاظ از احمس و اگر این الفاظان ببوند حکم رو اصوح بشویده خیلی روایت چیز خاصی و نکته خاصی به نظر ما نداره با نظر از اون مقدماتی که در واقع روایت گفتو این تا اینجا فردا اینشان به حتیال اگر ایومین فردا بحث تحضیب کنیم دو تا مطلب بوده مرموم استاد دو تا اشت یه زیل آیه نبع نرموم استاد نراتر بودن بله دو تا اشتاری البته زیل آیه نبع گفتن صفحه 231 قدی چاپ که من دارم لکه خودشون گفتن اشتار اختصاص با آیه نبع نداره آمه لکه اینش اونجا آوردن یکی راجع به کلام سیده یکی به اخبار مرواسته است. که این فرده هر رو بخونیم رد بشین انشاءالله زالان با این دیگه بحث خبر واقع تمام میشه.